کتاب افسانه های ایرانی به نویسندگی خانوم فرزان فرزاد ارائه شده از کانال تلگرامی هزار افثان داستانهای افثانه سوتی به مدیریت آقای محمد جواد بوستانی گوینده آرزو مقدم داستان تناب روز روزگاری در شهر اصفهان بازرگانی بود بسیار ثروتمند که تنها یه پسر داشت به نام کامل و این پسر عزیز دردونه جوانی بود بی خیال و بی فکر و البته شرور که شاید در زیر آسمان آبی اصفهان جوان بی‌صفت و شروری به مانند اون کمتر به دنیا آمده بود. کامل از صبح تا شب در کوچو و خیابون پرسه می‌زد و یه دست از جوانان هرزه و بی‌آر رو دور برش جمع کرده بود و با خودش از این طرف شهر به اون طرف شهر می بود و کارشون شده بود مسخر گری. و مردم مازاری حتی سک ها و گربه های شهر از دستشون راحت نبودند و هر کس از دور چشمش به این دست از ولگردها میافتاد، از سر راهشون کنار میکشید تا از فتنه اونها در امان بمونن و اما پدر کامل که در امانت و صداقت مشهور بود از داشتن چنین فرزندی شرم داشت کامل نه تنها آبرو حیثیت پدر پیرش رو بر برباد میداد بلکه هر روز به ترتیبی اون رو آزار میداد و بلای تازه‌ای سر اون پیرمرد می آورد یه روز غروب که اون بازرگان به خونه میرفت و در افکار خودش فرو رفته بود ناگهان کامل از پشت دیواری بیرون اومد و ترقی رو جلوی پای اون پیرمرد زد. بازرگان چنان وحشت کرده بود که نزدیک بود قلبش از کار بیفته و کامل که منظوری جز ترسوندن و آزار دادن پدرش نداشت در گوشی با چند نفر از دوستای ولگردش ایستاده بودند و قه قه بازرگان بینوا که دستش رو روی قلبش فشار میداد کمی صبر کرد تا حالش جا بیاد و در این حال چشمش به کامل افتاد و همه نیرو انرژیش رو جمع کرد و با صدای بلند گفت پسر امید ندارم که در زنده بودنم آدم شدن تو رو ببینم اما یقین دارم بعد از مرگ من به چنان حال و روزی میافتی که آرزوی مردن می کنی عاقبت آقابت خودت رو دار می کامل و دوستاش حرفای پیرمرد رو شنیدن و همه با هم شروع کردن به قهقه خندیدن و بازرگان پیر غمگین و افسرده به خونه رفت و تا صبح بیدار موند و در این فکر بود که بعد از مرگش بر سر تنها فرزندش چی میاد اطمینان داشت که کامل وقتی مالک ثروت بی حسابش بشه همه رو برباد میده و به روز سیا میشینه اون شب و شبهای بعد بازرگان پیر تا صبح بیدار موند و در فکر چار اندیشی و راهکاری بود هر شب نقشی به فکرش میرسید و تا صبح اون نقشه رو در ذهنش زیر و رو میکرد و عاقبت متوجه شد که از این راه به جایی نمیرسه تا اینکه یه شب ناگهان فکری مثل آفتاب در مغزش درخشید و صبح زود از جاش پرند شد و به بازار رفت و اوستابنایی که از آشناهاش بود و خبر کرد گفتش که لوازم و اسباب کارت رو به خوابگاه من بیار اوستا و در گوشه بزار و دنبال کار خودت برو اون روز غروب که بود وقتی بازرگان به خونه رسید در خوابگاه رو از داخل بست و بدون اینکه بزار کسی از رازش با خبر بشه اون شب و شب‌های بعد تا به کار برنامه مشغول بود و صبحها در اتاق رو قفل میکرد و نمیذاش که حتی همسرش هم از کارش سر در بیاره و با خبر بشه و عاقبت بعد از چندین شب پیاپی کار و زحمت وسط سقف خوابگاه رو سوراخ کرد و چندین هزار سکه طلا رو که تمام اندوخته نقدش بود در سوراخ سقف جا داد و سپس قلاب بلندی رو از سقف به پایین آویزون کرد و سوراخ رو با گچ بست و با رنگ سقف به حالتی اون رو در آورد که کسی متوجه دستکاری در نشه. روز بعد اوسابرنا رو خبر کرد که بیاد و ابزار و اسباب خودش رو ببرد. و بعد از اون که خیالش از این کار راحت شده بود، در خوابگاه رو باز گذاشت و بازرگان پیر کار خودش رو بدون عیب و نقص تمام کرده بود و هیچ کس با دیدن اون اتاق نمیتونست حدس بزنه که چه گنجینهی در سقف پنهان شده. کامل که کنشکاف شده بود، یه روز به خوابگاه پدر رفت و قلاب رو در بین سخف دید و خندید و با شوخی و مسخرگری به پدرش گفت راستش رو بگو ببینم چه خبر شده اینجا؟ این قلاب بیقواره رو چرا تو سقف رو کردیم؟ بازرگان گفت پسر من به فکر آینده تو هستم میدونم که یه روز انقدر بیچاره و درمانده میشی؟ که تصمیم میگیری خودت رو به دار بیاویزی وقتی چنین روزی رسید از تو میخوام که به من عمل کنی و تنابی که به این گلاب آویختم و و خودت رو در این اتاق میخوای دار بزنی رو این رو فشار بدی اینجا از هر جای دیگه برای مردن تو مناسب تره. کامل که خیال میکرد پدرش عقل خودش رو از دست داده یا میخواد اون رو دست بندازه انقدر خندید که نزدیک بود از حال بره بازرگان پیر دیگه کاری به کار فرزند خودش نداشت صبحها به بازار میرفت و در تجارت خانه بزرگ خودش به داد و ستت بشخول بود و هر روز بر ثروتش اضافه میشد پسر بی خیال و بی فکر هم دنبال شرارت و ولگردیای خودش بود و دوستان هرز و بی خودش رو تنها نمیذاشت و هر روز و هر ساعت به گوشه میرفتن و مردم رو عذیت میکردن و روزها به همین ترتیب گذشت تا اینکه در یکی از زمستانهای بسیار سرد و سخت بازرگان بیمار شد و چند هفته بعد جان خودش رو از دست داد. چندی نگذشته بود که ثروت بی اون نصیب وارث قانونی شد. کامل که گنج ای رو در اختیار خودش میدید در همون روزهای اول در تجارتخانه پدرش رو بست. و دوستانش رو خبر کرد که تا در خرج کردن این همه مال و ثروت بهش کمک کنن دوستان هرزه و بیار اون هم از این خبر خوشحال شدند و دور اون حلقه زدند و برای تلف کردن مال وراثتی هر روز راه تازه‌ای رو پیدا می‌کردند که بخوان اموال وراثتی کامل رو خرج کنن و هر بار مبلغ زیادی در بهای مشروب و شراب و حشیش میدادند و هر بار یکی از دوستانش به بهانه‌ای از کامل قرض میگرفتند و هر کدوم که دستشون میرسید چیزی رو میدزدیدند و به این ترتیب یه سال بیشتر طول نکشید که کامل متوجه شد نقدینه پدر تاکشیده. و کفگیر تعدیگ خورده اما باز به خودش نیمد و شروع کرد به فروش اسباب اساس خانه و بعد از این همه های خانه از فرش و اساس و اشیای قیمتی خالی شد کنیزان و قلامان خانواده رو که سالها در خدمت اونها بودن و به بازار برد و فروخت و هرچه از این را به دستش اومد خرج رفقای خودش کرد و چند هفته بعد حتی یک سکه برای خرید نون هم نداشت و در این حال بود که دوستانش متوجه حال و روزش شدن و به فکر افتادن از گردش پراکندشان و اون رو تنها بذارن ولی برای اینکه که داشته باشند، یه روز بهش گفتن که فردا نزدیک دروازه زیر درخت نار کهنسالی منتظرت هستن و تو باید سفره رنگینی برای ما فراهم کنی که هوای بهار است و, و گل صحرا رو پر کرده اونجا منظره خوبی داره کامل بهشون قول داد که وسایل پذیرایی رو فراهم میکنه. و به خونه رفت و ساعتی در گوشه فکر میکرد و درمانده نشسته بود و سرانجام تنها چاره رو در این دید که پیش مادرش بره و از اون کمک بگیره چون تا این موقع هر چیزی که در خونه داشت رو فروخته بود ولی هنوز جرعت نکرده بود در صندوق مادرش رو باز کنه چون میدونست که مادرش در این صندوق لباسهایی که یادگار روزهای جوانیشه نگهداری میکنه با این حال مادر کامل رو وقتی دید که چشمهاش عشق باره بهش گفتش که برو در صندوق رو باز کن لباسهای زر و مروباریت رو بفروش کامل بدون اینکه از محبت و مزرگواری مادرش تشکر کنه لباس رو قاپید و به بازار برد و فروخت و با پول اون هشیش و شراب گرفت و که بریان و بوغلمون کباب شده و چیزهای دیگه ای رو خرید همه رو در سفره بزرگی پیچید و در سبدی گذاشت و و اون سبد رو بر دوش گرفت و از شهر بیرون رفت تا خودش رو به درخت کهنسال برسونه هوا گرم بود و آفتاب سوزان و سبدی که بر دوش میکشید بسیار سنگین ناچار در گوشه روی سنگی نشست تا نفسی تازه کنه و به راه خودش ادامه بده اما در این حال دو سگ سیاه گرسنه رو دید که له له زنان به طرفش میدوند. معلوم بود که بوی قضا به مشامشون خورده و تاب مقاومت ندارن کامل از جای خودش بلند شد و سنگی به طرفشون پرتاب کرد اما سکها چنان گرسنه بودند که از سنگ و چوب واهمه نداشتن دیوانوار حمله کردن و سبت رو به زمین انداختن و یکی بوغلمون کباب شده رو برداشت و دیگری کبک بریان رو به دندانش گرفت و پا به فرار گذاشت و در این حمله هر چه در سبد بود روی زمین پخش و پراکنده شده بود کامل با چشمهای اشکبار سبد خالی رو برداشت و خودش رو به درخت چنار کهنسال رسوند و برای دوستان عزیزتر از جانش داستان حمله اون دو سگ گرسنه رو توضیح داد دوستانش هرچه فش و ناسزا بلد بودند تقدیمش کردند و حتی یکی دو نفر با مشت توی سرش کوبیدن و بدون اینکه حال زار اون رو بهش توجهی داشته باشن تنهاش گذاشتن و رفتن و کامل احساس میکرد که چقدر تنها و درمانده است و حالا بعد از سالها نقاب از صورت رفقاش کنار رفته بود و چهره واقعی اونها رو به چشم دید ساعتی در همون حال موند و سپس از جاش بلند شد و افسرده و ناامید به راه افتاد. هوا تاریک شده بود که به خونه رسید و به خوابگاهی رفت که پدرش در سالهای آخر عمر در اونجا می خوابید و روی تشکی که در گوشه اتاق پند بود به پشت خوابید. آرزوی جز مرگ نداشت. چشمش به سخف افتاد و نگاهش به قلابی که از سقف آویزون بود و به یاد پدرش افتاد که بهش میگفت روزی پشیمان خواهی شد و خودت رو به دار می آفیزی. کم کم این فکر در ذهنش اثر گذاشت و از جاش بلند شد و از اتاق بیرون رفت و تناب چاه رو باز کرد و با خود به خوابگاه برد و چهار پایه زیر پاش گذاشت و روی اون رفت و تناب رو به قلاب انداخت و طوری گرزد که بتونه حلقش رو دور گردن خودش بندازه. کمی به دور و بر خودش نگاه کرد. در اطراف خودش هیچ چیزی ندید که از این فکر منصرفش کنه. تناب رو دور گردن خودش انداخت و با یک حرکت سریع پای زیر زیرپای خودش رو به گوشه انداخت. تناب چنان به گلوش فشار می آورد که نزدیک بود نفسش بند بیاد. اما قبل از اینکه خفه بشه، قلابی که تناب به اون بسته شده بود تاب نیاورد و از جا کنده شد و به دنبال اون قسمتی از سقف فرو ریخت و هزاران سکه طلا از سوراخ سقف به پایین سرازیر شد و کامل که با فرو ریختن سقف به زمین افتاده بود از جاش بلند شد و چشمهاش رو مالید و دوروبر خودش رو نگاه کرد و کم کم حقیقت رو پیدا کرد و تازه میفهمید که پدرش چرا حلقه آهنی رو به سقف آویخته بود و ازش خواسته بود که وقتی به نهایت درماندگی رسیدی خودت رو به تناب به اون حلقه بیاویز کامل از خواب بیدار شده بود اون کابوس خلناک ازش دست بر نداشت از خوابگاه بیرون اومد و نزد مادر خودش رفت و دستش رو بوسید و ازش محضرت خواهی کرد و داستان تلاب و حلقه رو برای مادرش توصیح داد که از اون به بعد زندگی تازهای رو شروع میکنه و روز بعد به بازار رفت و لباسهای روزهای جوانه مادر رو دوباره خرید و به مادرش نشون داد که من دوباره اینها رو برای تو پس آوردم و سپس به سراغ بازرگانی رفت که غلامان و کنیزانش رو به اون فروخته بود و با پرداخت مبلغی اونها رو دوباره به خونه باز آورد و یه هفته بعد درهای تجارتخانه پدر رو باز کرد و به کار تجارت مشغول شد دوستان نابابش که خبردار شده بودند که کامل دوباره به ثروت بیحسابی رسیده دستجامی نزدش رفتند و سر و روی اون رو بوسیدن و ازش خواستن که دوستان قدیمی و صمیمیش رو فراموش نکنه. کامل خنده کرد و گفت فردا زیر همون درخت چنار کهنسال منتظر من باشید. قصد دارم در اونجا مهمانی با ترتیب بدم. جوانان بی‌آر و هرزه خیلی خوشحال از تجارتخانه بیرون رفتن به این امید که مهمانی فردا مقدمه تجدید دوستی اونها خواهد بود و این لقمه چرب و نرم دوباره به سفره اونها برمیگرده و اما روز بعد همه دوستان هرزه و بی‌آر زیر درخت چنار کهنسال جمع شده بودند نزدیک ظهر کامل رو دیدن که سوار بر اسب بود و به تاخت میدوید. همین که محفل دوستان رسید از اسبش پیاده شد و سفره بزرگی را آورد و روی سبزه ها پهن کرد و سپس چند سبد خالی رو که به ترک اسب خودش بسته بود آورد و وسط سفره گذاشت همه با تعجب به ثبتهای خالی نگاه میکردن کامل رو به دوستان سابق خودش کرد و گفت یاران عزیز به آشپز گفته بودم چند بوغلمون بزرگ برای نهار امروز کباب کنه اما امروز صبح آشپز نزد من اومد و گفت که قبل از اینکه بوغلموها رو کباب کنه چند موش بزرگ از سوراخ بیرون اومدن و هر کدوم یکی از بوغلموها رو برداشتن و به سوراخشون بردن به همین علت بود که امروز نتونستم غذای مناسبی برای شما بیارم و ناچار شدم ثبتهای خالی رو بیارم که حرف من رو باور کنید دوستان راست و پست اون که میدونستن کامل دوباره ثروتمند شده و تا مدتی میتونن اون رو بدوشن و در کنار زندگی خوش و راحتی داشته باشن چند دقیقه سکوت کردن تا اینکه یکی از اونها گفت دوست عزیز ما درست میگه من با چشم‌های خودم دیدم که یک موش کوچولو، یک بوغلمون بزرگ رو با دیگ قضا از توی آشپزخونه جابجا کرد و به سوراخ برد. اون هم چه سوراخی؟ به اندازه سوراخ یک سوزن. و یکی دیگه از بینم گفت این که چیز مهمی نیست. من با همین یک جفت چشمای خودم دیدم که موشها یک گوسفند درسته رو گرفتن و به سوراخ بردند. نفر سوم گفت چیزی که میگم خودم شاهد و ناظرش بودم. یک روز در آشپزخونه بودم و دیدم که موشی از سوراخ بیرون اومد تا بو قلموی رو که توی دیگ و بر سر آتیشه ببره. که آشپزپاشی متوجه شد و با ساتور دنبالش کرد اما موش بی انصاف آشپزباشی رو با ساتورش به سوراخ کشید و دیگه کسی از اون آشپزباشی خبری پیدا نکرد کامل وقتی داستانهای عجیب دوستان سابق رو شنید سکوت رو شکست و گفت چند ماه پیش زیر همین درخت چنار قرار بود من دوستانم رو مهمون کنم و آن روز دو سگ به من حمله کرد و غذاهایی رو که با خودم آورده بودم بردن و خوردن و من اومدم و داستان رو برای شما گفتم در اون موقع که من فقیر و بیچاره شده بودم و مخارج غذای اون روز رو از فروش لباسهای مادرم تهیه کرده بودم هیچ کدوم از شما حرف درست منو باور نکردید ولی حالا که میبینید دوباره ثروتمند شدم و زر و زیور و قلام و کنیز و تجارتخونه و نقدینه دارم هر دروغی بگم باور میکنید و دروغ های در تایید حرف من هم میگید وگرنه چطور امکان داره که یک موش بتونه آشپز باشه و ساتورش رو به سوراخ خودش بکشه؟ دوستان عزیز من دیگه اون پسر ابله و مزحک نیستم که دنبال شما راه میافتادم و مردم رو آزار و عذیت می و حتی پدرم رو برای خوش آمد شما دست می داختم. و تمام هستی و نیستیم رو به پای شما می دختم. از قدیم گفتند دوستان رو باید در موقع بدبختی و گرفتاری بشناسی و حالا اومدم که زیر این درخت چنار برای همیشه از شماها خداحافظی کنم و آرزو دارم که از این به بعد چشمم به روی هیچ کدام از شما نیفته و قبل از اینکه جماعت عباش و عرازل به خودشون بیان و به جون هم بیفتن کامل روی اسب خودش پرید و چهار نل به طرف شهر رفت و دوستان سابق تا مدتی صدای سم اسب اون رو میشنیدن که لحظه به لحظه دورتر میشد از داستان تناب به این نتیجه میرسم که در کنار آدمهای زندگی باید هم در لحظات شاد و هم در لحظات ناراحتی کنارشون قرار گرفت تا باعث حفظ رابطه و ماندگاری بشه. خیلی ممنونم از شما دوستان عزیز که تا انتهای این داستان افسانهای همراه من بودید. سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه هاقصه هایی از غول ها و کوطول ها ماجرههایی از جادوگرها سفر به سرتمین های جادویی و تلسم شده رفتن به دنیای پریان،